ممه یک بشخاب ژله و دو پیراشکی شور آورده بود از همان نوع که از مادرم یاد گرفته بود زنگ ساعت 9 ضربه نواخته بود ممه روبروی من ته مغازه نشسته بود و با بیمیلی غذا میخورد گویی ژله و پیراشکی فقط برای این بود که به این دیدار شکل بدهد من این را فهمیدم و گذاشتم در هزار توی خودش آزاد باشد و او با چنان حسرت و شیفتگی اندوه باری در گذشته غرق شد که چهرهش در روشنایی چراغ نفتی روی پیشخان رنگ پریدهتر و پیرتر از آن روزی نمود که با کلاه و کفش پاشنه بلند به کلیسا آمده بود پیدا بود که آن شب هم دلش می‌خواهد خاطره‌هایش را به یاد بیاورد و در حالی که به زنده کردن خاطره‌هایش سرگرم بود چنین گمان می‌کردی که در تائی سالیان گذشته خود را در دوره بی بی‌زمان و ساکن و منحصر به فرد نگاه داشته وان شب زنده کردن خاطراتش وقت و زمان شخصیش را به حرکت در می آورد و دوره دیر سال به تعویق افتادهش را سیر می کرد. ممه وقتی از شکوه شگرف و فودالی خانواده ما در آخرین سالهای قرن گذشته پیش از جنگ بزرگ استقلال حرف می زد، حالتی عبوس و افسرده به خود می گرفت. مادرم را به یاد می آورد. آن شبی هم که من از کلیسا برمیگشتم و او با شیوه ی تاحدی ریش خندامیز و تنزالودش به من گفت کبلا، داری عروسی می کنی و به من خبر هم نمی دهی. به یاد مادرم افتاد آن ایام دقیقا همان روزهایی بود که من به مادرم نیاز داشتم و سعی می کردم هرچه بیشتر و روشنتر او را در خاطرم زنده کنم او می گفت, مادرت تصویر زنده تو بود من به راستی باور می کردم. در برابر این زن سرخ که لحچهش آمیزهی از سراحت و ایهام بود نشسته بودم انگار خاطراتی که با آنها جان می داد، همیشه با انبوهی از افسانه های باور نکردنی همراه بود اما همچنین انگار این همه را با حسنیتی سرشار زنده می کرد. و حتی بر این باور بود که گذشت زمان از افسانه واقعیتی ساخته که اگر چه دور است اما فراموش کردنش آسان نیست. با من از سفر پدر و مادرم در ایام جنگ بزرگ حرف میزد و از زیارت پردرد سرشان که به اقامت در ما کند و انجامید می‌گفت. پدر و مادرم از مخاطرات جنگ می‌گریختند و در مسیرشان به دنبال جای دنج و مساعدی بودند تا در آن ساکن شوند که موضوع گوساله طلایی را شنیدند. و در جستجوی آن به جایی آمدند که در آن موقع شهرکی بود که داشت شکل می و به دست چند خانواده پناهنده بلانه شده بود که اعضایشان به همان اندازه در حفظ و مراقبت از سنتها و مراسم مذهبیشان دقیق و حساس بودند که در پروار کردن خوکهایشان مکنده ارز عرض آرامش و انجیل پدر و مادرم بود در اینجا بود که آنها نقطه دلخواهشان را برای بازسازی خانه‌ای که چند سال بعد به خانه علاقی با سه استبل و دو اتاق پذیرایی تبدیل شد یافتند. ممه خاطرهایش را، بی هیچ افسوسی به یاد میآورد و درره نامعقول ترین کارها با شوقی مهار نپذیر برای باز آنها و یا با دردی ناشی از این حقیقت که دیگر هرگز نمیتواند آنها را دوباره زنده کند حرف میزد میگفت که هیچ رنج و محرومیتی با آن سفر تو نبود حتی عصبها نیز در پشه بند میخوابیدند نه از آن رو که پدرم مردی اصرافکار بود یا عقل در سر نداشت بلکه به این علت که مادرم از حس خیرخواهی غریب و احساسات انسانی سرشار بود و فکر می کرد که خدا از محافظت انسان و حیوان از پشه به یک اندازه خوشنود می شود محموله سنگین و در همبر همانها همه جا پهن بود چمدانها پر از البسه مردمی بود که پیش از پا به خشکی مرده بودند همان اجدادی که در عمق سیمتری خاک نیز نمی شد با آنها دست یافت و جعبه ها پر از ظروف و وسایل آشپزخانه بود که مدتها بلا استفاده منده بود و به خویشاوندان بسیار دور پدر و مادرم تعلق داشت پدر و مادرم دختر امه و پسردایی بودند و حتی چمدانی پر از شمایل قدیسان بود که هر کجا توقف می برای تجدید بنای مهراب و مقبره خانوادگیشان از آنها استفاده می آنها اسب و مرغ و چهار سرخ پوست گواخی همراهان ممه که در خانه ما بزرگ شده بودند و سراسر ناهی را مانند حیوانات تربیت شده سیرک به دنبال پدر و مادرم آمده بودند کارنوال عجیبی را تشکیل میدادند دادند ممه این چیزها را با اندوه به یاد می آرد این احساس به تو دست میداد داد که او گذشته ایام را یک خسران فردی تلقی می کند گویی آن را در قلب خیش که از این همه خاطرات آزرد و جریهدار شده بود حس می‌کند خیال می‌کردی که اگر زمان سپری نشده بود او همچنان به آن سفر که برای پدر و مادرم نوعی مجازات به شمار می‌آمد ولی با آن مناظر عجیبش نظیر اسب توی پشه بند برای بچه ها مایه خوشی بود ادامه میداد می گفت که آنگاه همه چیز به قهقرا برگشت ورودشان به دهکده نوپای مکندو در آخرین روزهای قرن ورود ای بود پاک باخته که هنوز به شکوه تازه گذشتهی که بر اثر جنگ از هم پاشیده شده بود دلبستگی داشت زن سرخ پوست ورود مادرم را به یاد می آور. یک وری روی قاطر نشسته بود صورتش کبود و مالاریایی و پاهایش از شدت ورم ناتوان بود شاید جوانهای خشم و رنجش در قلب پدرم رشد می کرد، اما او خود را آماده کرده بود تا خلاف جریان حرکت کند و در همان حال منتظر بود که مادرم بچه ای را به دنیا بیاورد برد که در طول مهاجرت در رحمش رشد کرده بود و هرچه موعد تولدش نزدیکتر می شد مادر را بیشتر به مرگ نزدیک می کرد. نور چراغ نیم او را روشن می کرد. با آن حالت خشک سرخ پوستی و موهای صاف و زبرش همچون یال یا دم عصب بود مانند بطی نشسته، سبز و شبهوار در اتاق کوچک و دم کرده ی پشت مغازه چنان حرف می زد کنگار بطی می خواهد هستی زمینی دیرینه خویش را به یاد بیاورد هرگز خود را به او نزدیک احساس نکرده بودم اما آن شب پس از آن جلوه ناگهانی و بی اختیار دوستی و سمیمیت حس کردم که با علایقی محکم از پیوندهای خونی به او مربودم ناگهان در فاصله یکی از مکس های ممه صدای صرفی از اتاق کناری به گوشم رسید همین اتاق خوابی که من با بچه و پدرم حالا در آن هستیم. صرفهی خشک و کوتاه بود و بدون آن کسی سینه را صاف کرد و صدایی که پس از آن شنیدم دقیقا متعلق به مردی بود که در رخت خواب میزد. می زد. ممه یک بار خاموش شد و ابری از اندوه و سکوت چهره را فرا گرفت. اصلا او را فراموش کرده بودم. در تمام مدتی که آنجا بودم ساعت حدود ده بود احساس می کردم که انگار من و زن گواخیرویی در آن خانه تنها هستیم و بعد هیجانی که بر فضا حاکم بود عوض شد در دستی که با آن بشخاب ژلو و پیرشگی را بیان آنکه چیزی از آن بخورم نگه داشته بودم احساس خستگی کردم به جلو خم شده و گفتم بیدار است. او که حالا دیگر چهره بی و سرد و کاملاً بی تفاوت داشت گفت تا صبح بیدار میماند. و ناگهان سرخوردگی را که هنگام زنده کردن گذشته خانه ما در چهره ممه موج میزد درک کردم زندگی ما دگرگون شده بود روزگار خوشی داشتیم و ما شهر فرهایهوی شده بود و حتی پولان قدر زیاد بود که میشد شنبه به شب ها خرجی کرد، اما ممه به گذشته بهتری گره خورده بود. وقتی که دیگران در بیرون پشم گوساله تلایی را می چیدند، او در ته مغازه زندگی عقیم و گمنام خود را طی کرد. روزها را پشت پیشخان و شبها را با مردی سر می کرد که تا سپیده سهر، چشم بر هم نمیگذاشت و تمام وقت در خانه ول میگشت قدم میزد و با نگاه حریس و شهفت بار سگانشگرگز نتبانستم فراموش کنم به ممه خیره میشد از این فکر غمگین شدم که ممه با مردی سر میکند که یک شب از مداوای او سرباز زد و جانور پوست کلوفتی شد که بی هیچ کینه و همدردی تمام روز در خانه چنان بی و بی ول میگشت که می توانست متعادل را هم دیوانه کند وقتی لحن صدایم به حالت عادی برگشت و فهمیدم که او در اتاق خودش بیدار است و هر وقت که صدای ما را در ته مغازه میشنود چشمان شهوت بار سگانش را از هم باز می کند کردم موضوع صحبت را عوض کنم پرسیدم کاروار چطور است؟ ممه خندید خندش غمنگیز و بی صدا بود و به نظر می آمد از درک و احساس لحظه ها بریده است مانند چیزی که در گنج نگاه می داشت و فقط در صورت اجبار آن را در آورد و بی هیچ هست مالکیتی از آن استفاده می کرد گویی به ندرت خندیدن شیوه استفاده از آن را از یادش برده بود سرش را با حالتی پامامیز تکان داد و گفت همین است که میبینی و دوباره خاموش شد و در خیال فرو رفت در این حال فهمیدم که باید بروم بشغاب را میان که توضیح دهم چرا دست بان نزدم به دست ممه دادم از جایش بلند شد و آن را روی پیشخان گذاشت از جا به من نگریست و تکرار کرد تو تصویر زنده مادرت هستی من قبلا جلو نور نشسته بودم و همین دلیل ممه وقتی حرف میزد نتوانسته بود صورت مرا خوب ببیند. زیرا نوری که از جهت مخالف میتابید حال به دورم انداخته بود. پس از آن، وقتی ممه بلند شد تا بشخاب را روی پیشخان بگذارد مرا رو از روبرو و از پشت چراغ دید و به همین دلیل بود که گفت تو تصویر زنده مادرت هستی. و برگشت سر جایش نشست آنگاه آن روزهایی را به یاد آورد که مادرم تازه به مکنده آمده بود او را یک راست از غاطر به یک صندلی گهوارهی منتقل کرده بودند و او سماه آزگار بی حرکت روی صندلی نشسته بود و غذایش را با ها بی خورده بود گاهی که نهار برایش می آوردند بشقاب نیم خورده به دست سراسر بعد از ظهر را مینشست. سخت و جدی هیچ جنبش و حرکتی، پایش را روی یک صندلی میگذاشت و حس می کرد که مرگ تو آنها رشد می کند تا اینکه کسی می آمد و بشخاب را از دستش میگرفت. وقتی سرانجام روز ما اوت فرار رسید، دزایمان او را از آن انزوا بیرون کشید و او به تنهایی از جا بلند شد. گویین که مجبور شدند او را که طی نه ماه رنج خاموش با مرگ دست و پنج نرم کرده بود کمک کنند تا بیست قدم فاصله میان ایوان و تخت خواب را تیگ کند جابجا جا شدنش از صندلی گهوارهی به تختخواب با همه دردها و تلخیها و مکافاتی که در طی سفر چند ماه پیش از او دور شده بودند تو هم بود اما او پیش از آن که آخرین پرده زندگیش را بازی کند به جایی رسیده بود که میدانست باید برسد ممه می گفت که پدرم بر اثر مرگ مادرم سخت نومید به نظر می رسید اما انطور که او خودش بعدن که در خانه تنها بود می گفت هیچ کس به اصول اخلاقی خانهی که مردش زنی قانونی در کار خود نداشته باشد اعتماد نمی کند و چون او در جایی خانده بود که وقتی معشوقهی بمیرد باید برای زنده کردن خاطره او هر شب بستری از گل یاسمن مهیا کرد درختشی جلوی دیوار حیات کاشت و یک سال بعد زن دیگری گرفت با آدلایدا نامادری ازدواج کرد گاهی فکر می کردم که ممه هنگام صحبت می خواهد گریه کند اما او از فقدان خوشبختی که زمانی داشته و به اراده خودش از آن دست شسته رازی منده بود. در این حال لبخندی زد. در صندلیاش یله داد و حالت انسانیش را کاملا باز یافت. وقتی به جلو خم شد و دید که خاطرات خوشی که برایش مانده از تعادلی دلخواه برخوردار است چنان بود که انگار غم و اندوهش را با روایاتی ذهنی منظم کرده است. آن وقت با همان مهربانی قدیمی بیکران و سمیمیت آزارندهش لبخند زد. گفت که آن باقی پنج سال بعد اتفاق افتاد. پدرم داشت نهارش را میخورد که او وارد اتاق نهار خوری شد و گفت سرنگ، سرنگ، غریبه ای به دفترتان آمده میخواهد شما را ببیند.